مأیم خریدار می کهنه و نو وانگاه فروشنده عالم به دو جو دانی که پس از مرگ کجا خواهی رفت می پیش منام رو هر کجا خواهی رو ناکرده گناه در جهان کیست بگو بان که کی گناه نکرد چون زیست بگو من بد کنم و تو بد مکافات دهی پس فرق میان من و تو چیست بگو یا قومت لب لعل و دخشانی کو، وان راحت روح و راه ریحانی کو، گویند حرام در مسلمانی شد، تو می و غم مخور، مسلمانی کو. ای زندگی تن و تبانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من، من نیست شدم در تو از آنم همه تو.